بهرانهای سیاسی مبارزههای بیپایان بر سر حاکمیت نظاعهای دینی دعواهای مذهبی آناتولی در قرن سیزدهم هم شاهد همه اینها بود در غرب صلیبیهایی که گویا ازم آزادی بیتالمقدس بودند قسطنطنیه را اشغال و قارت کرده و به این ترتیب زمینه فروپاشی امپراتوری بیزانس را فراهم آورده بودند در شرق نبوق نظامی چنگیزخان سبب شده بود قشون منظم مقل به سرعت همه جا را تسخیر کند در همان حال که بیزانس می کوشید عرازی رفاه و اقتدار از دست رفته را بازیابد، خانات ترک هم که در آن میان مانده بودند، با یکدیگر می‌جنگیدند. در آن قرن چنان اقتشاش و ای حاکم بود که نظیرش تا آن زمان دیده نشده بود. مسیحیان با مسیحیان، مسیحیان با مسلمانان، مسلمانان نیز با مسلمانان در حال ستیز بودند به هر سویی می رفتید دشمنی و خصومت، به هر طرفی می چرخیدید استراب و هرس و تمع به هر که برمیخوردید خوردید نگرانی از بابت آینده می دیدید. انتظاری پرتنش درست در میانه این هیاهو در شهر قونیه آلمی مسلمان زندگی می کرد. این شخصیت ممتاز که اکثر مردم مولانا به معنای سرورمان خطابش می کردند، هزاران مرید و شیفته داشت که از چهار سوی عالم آمده بودند. او را چراقی میدانستند که بر تمام مسلمانان نور می تابان. مولانا یا همان جلال الدین محمد مولوی در سال 1244 میلادی برابر با 642 هجری قمری با شمس تبریزی آشنا شد. شمس از دراویش قلندریه بود. زبانی تند و تیز داشت. روندی که با تلاقی راههایشان شروع شده بود زندگی هر دوشان را از بی دگرگون کرد دلشان یکی شد سوفیان قرنهای بعد پیوند آن دو را به یکی شدن دو دریا تشبیح کردند در سایه دوستی و مصاحبت با شمس بود که مولانا جسارت یافت از دایره قواعد مرسوم پا فراتر بگذارد و به اهل دلی مخلص، مدافع آتشین عشق، بانه سما و شاعری پرشور بدل شود. آثار معزمی که از خود برجا گذاشت، لقب شکسپیر عالم اسلام را برایش به ارمغان آورد. در عصر تعصبها و پیش داوریهایی که تا اعماق جامعه ریشه دوانده بود، از معنویاتی فراگیر و صلحجو دفاع کرد در خانهاش را به روی همه انسانها گشود. بر جهاد باطنی تاکید کرد که هدفش به کمال رساندن انسان بود. توصیه میکرد که انسان تا آخر با منیتش بجنگد و گام به گام بر نفسش قلبه کند. معاا همه این اندیشه ها را نپذیرفتند. درست همان گونه که همه طوفان عشقی را که در دل دارند نمیپذیرند. پیوند قوی روحانی میان شمس تبریزی و مولوی آماج تیرهای بدگویی و تهمت و افترا قرار گرفت. حتی بعضیها گفته هایشان را کفرآیز خواندند درکشان نکردند و آنها تهمت و افترا زدند حسادت ورزیدند سرانجام شاید نزدیکترین کسانشان به آنها خیانت کردند سه سال پس از آشناییشان به شکلی قنبار از یکدیگر جدایشان کردند اما داستانشان در اینجا به پایان نرسید در اصل این داستان پایان نیافت، ادامه پیدا کرد. حتی پس از گذشت 800 سال، امروز هم روح شمس تبریزی و روح مولانا جلال الدین رومی زنده و سیال میانمان در حال سما هست.